جان در حمایت یک دمه است و دنیا وجودی میان دو ادم. دین به دنیا فروشان خرند. یوسف بفروشند تا چه خرند؟ علم اعهد علیکم یا بنی آدم ان لا تعبد و به قول دشمن پیمان دوست بشکستی، ببین که از که بریدی و با که پیوستی.